یوزا فایل از ذرفه توسعن فیه عمل و فیما بعدهو ارفعه پس مستر و موقع عمل میکنه در ما بعد خودش رفعه به عنوان فایلیت و نسبه و رو به عنوان مفعولیت مثل این نگاه کنید حب و یومن آقلون لحوان سبن حب مبتدا سبن خبرشه مثل هدن الان رفعش تقدیریه اولایی که الا هدن سه یعنی رفعش تقدیری اینو حب و حب یعنی دوست داشتن فاعل میخواد فاعلش کیه؟ آقل مفعولش کیه؟ نه حالا اگه حب اضافه شده بود با آقل فاعلش و لحبش منصوب ذکر شده بود میشه قسم اکثر اگر اضافه شده بود به لحوه و فائلش بعد مرفوض شده بود میشه قسم قلیل قلیل اگر اضافه شده بود به لحوه و فائل اصلا ذکر نشده بود میشه قسم کسیر حالا هیچ کدوم نیست اضافه شده به ذر یوم مفعول فی یعنی اون یوم الان لفظا مجرور محلم منصوب مفعول فی هست بعد فائل و مفعول به شکل مرفوع منصوب زک شدن میگه این کمه قدیوزا یعنی دوست داشتن آقل و لعب را در روزی روزی از روزگار برسد که عاقل به و لعب علاقه مند شد این سبند جهل است است دیست انحراف از راه حق است سبند نقطه سرخت <تصفيق> نقطه و جره مایت یتبع و ما جره و من را آفلت با علمحله فحسن خوب این شعر رو گوش کنید و جره واب واب آتفه جره فعل امر گرفتیم که واب رو واب چی گرفتیم؟ آتفه تا عطف به جای فعل چی؟ فعل قبلش چیه؟ و بعد جلح لذی اوزیفله کم میلی فیره چیه؟ اگر ما جلحه رو فیره بگیریم چی میشه؟ واقع رو باید استینافیه بگیریم خلاف اصله جلحه ما جلحه فیر زمیر انتفایلش ما چی؟ مفقودش اما اگه مچهول بگیریم ما رو باید بگیریم نایبه؟ ما یتبه او ما جره جر فیل و فایل و مفعول یتبه او ما جره جر یتبه او فیل زمیر فایلش و ما بگید مفعولش زمیر فایلش آید هم هست میگه چی؟ میگه اگر شما مثلا اومدید مستر و الان یه مثال بگیم عجبنی زرب و زیدن امرا عجبنی زرب و زیدن امرا اضافه شده به چی؟ به فاعلش زید میگه شما جر بدهید آنچرا که تابع بشه به مجرور تابع بشه به معمول مجرور مستر یعنی الان بگم عجبنی زرب و زیدن و امرن بکرند یعنی یه چیزی رو عطف کردم به جای فائل و اون رو هم عطفه به لفظ کردم مجبور خوندم میگه یه چشکال نداره بسیار چیه کار خوبی چون عطفه بر لفظه عطف علا لفظه اصل در عطفه میگه و جره لمایت و او جره ما مفهوله و و جره این فعله مچهوره فقط فعل از تو زمیر نایب فائش پس بده آنچه را که تابه شود آن چرا که مجبور به مستر شده میگه مگه جوره دیگه هم میشه میگه آخه مثلا اونی که مجروره به مستر شده لفظاً مجرور محلن چیه محلن منصوب یا محلن مرفوعه مثلا الان این حب و یومن یومن لفظاً چیه مجروره حالا اگه مثلا یه لیلم بهش اد کنم بگم حب و یومن و لایلن میشه قسم اولا اما اگر گفتم غب و یومن و لیلن میگه غلط نیست عطف کردید به جای چی؟ محله میگه و من را فعل اتباع المحل و حسنون اگر کسی هم بیاد تبعیت کنه محل رو و عطف المحل کنه اون همچیه حسنون کارش کاره ولی نیست درسته و من را واب, واب حالیه من من شرطیه مبتدا نمیشه من محصوله گرفت را با را آفل زمیر فائلش و آهد سلب آره یا آهد فعل شرط به عداد شرط آهد فعل شرط به عداد شرط تو فیل اگر عدات شرط مبتدا باشه فیل شرط عدل اصل خبر مبتدا هم بگی هست رابط هم میخوای به عدات شرط و رابط خبر بر مبتدا فلتبا متعلقه به را آ المحله مفعول مفعول را این فحسنون پافای جزایی است. حسنون مفرده ها حسنان چیه؟ مفرده نمیتونه جزای شرط بشه باید چی کنیم یه دونه لنگه دیگه کلام رو براش تقدیر بگیریم تا بشه جمله و بگید بشه جزای شرط بلا جزای شرط مفرد ممید. پس این خبر یک مبتدای محضوفه یعنی ففعلهو فعملهو چی چی؟ ففعلهو و عمله او حسنون پس فعلش و عملش چیه؟ نیک و این نگرفتم من من رو من موصوله چرا چون اگه من من موصوله بود باید فای جزا موقعی می که ما آخرش رو جمله داشتیم و اگه مفرد باشه دیگه فا لازه نداره یعنی باید می گفتش چی؟ من را آفرت با المحله حسنوند و من را آفلت با المحله فحسنان یعنی ففعلهو فعملهو چی؟ حسن چون الازی یعتینی فله بودر هم فای جزا موقعی که میاد آفای شبه جزا که چی؟ خبر الازی خبر محصول چی باشه؟ جمله باشه خب بریم پایین ببینیم چی گفت و جر رمایت و او جر رفت و جر آن چرا که تابه مجرور شود مراعاتن للفظ به جهت مراعات کردن لفظ یا مراعات لفظه به جهت مراعات کردن لفظ. و وحوول اولا و این بهترم هست چرا؟ چون ادفعلا لفظه اولاست نسبت به ادفعلا مهن نبا عجب تو منظر به زیدن از ذریف خب الان نگاه کنید ما از ذریف رو چی میخونیم از ذریفه میگه این خیلی هم خوبه هدفعلا لفظ شده هر که هم هدفعلا لفظ کنه غلط نیست ولی الان این زید احتمال داره چه؟ احرابی داشته باشه احتمال داره فاعل باشه و محلم بشه چی؟ مرفوع احتمال داره بگید منصوب باشه و مفعول اولی میشه از زدن زید دومی میشه از کتک خوردن زید احتمال هم داره که زرب مصدر مچهول باشه و زید باشه نایب فایل باز میشه محلن محلن شد میگه از ظریف رو ما از ظریفه مخونیم تا به لفتش مکنم و من را آفلت با المحلن و هر کسی که و حالان که هر کسی مراعات کند در این تابه انداختن در این تابه آوردن فرطبا المحل محل رو فرفع تابه الفایله پس رفع بده به تابه چی؟ فایل و نصده تابه المفعوله و نصده به تابه مفعول المجروره این تابه مجرور منظورمونه فایل و مفعولی که بکید المجروره این یا المجروره صفت الفایل و المفعوله فرفت تا به و نسبت تا به المفعول فاعل و مفعولی که چی هم؟ این مجرور هستند الان لفظن که چه محلن چی هم؟ مرفوع و منصوب هم فحسنون فعلهو فعلهو رو نوشت که بگه این چیه؟ آه یعنی خبره و جزای شرط جمله است حسنون فعلهو چه قوله این؟ مثل این آره از سال کو سقرته یا از سال کو سقرته میتونه اضافه بشه میتونه اضافه بگی نشه مثلا ازار با الرجله ازار از و رجله ازار از و ارجله اونج هم دیگه تو باب اضافه اضافهش اضافه لفظیه میتونه اضافه بشه الف لام دار با دار میتونه اضافه نشه قبل از اصالک مثلا مینویسیم قوبه قوبه یه اصالکو بشه چی؟ خبرش اصالکو سقرته اصالکو سقرته سقرت یعنی اون راه کوهی کتل اون چیزی که تو کوه هست سقور مسلمین میگن منافضی که دشمن احتمالا از اون جاها وارد میشه سقور جمع میشه از سال و میگه او چه چیزی که میپیماید سغور و کوههای اون راه های کوهی رو که دشمن میخواد از دش نفوکن. از سال و صت از سال و صقرته، ع یغزان مال من یغزان رو با ذااد نوشته. باید با چی بنوشه ؟ با زاب. یعنی بیدار. یغزان یغزان نه سالکوها. این یغزان صفت سربی برای صقره. میگه او کسی است که بالا رونده است پیماینده است راه های لب مرز رو راههایی که یغزان صادکو ها رونده اون راه ها نمیتونه کش به هم بزنه ها اصلا قابلیت چش به هم زدن هست؟ ادرع از خوف همیشه چشماش چیه باز از ترس علیغزانه علیغزانه سالک ها الان علیغزانه علیغزانه توبه چیه از ثغر است مشغر حلوک حالا اگه اون از سقرته خوندیم بگید میخونیم علیغزانه اگه از سقرته خوندیم میخونیم چی علیغزانه سالک هم که فایل علی اغزانه. و به همین دلیل یغزان مذکر اومده چون مطابقت با فایلش میکنه نهت سببیست حتی اگر ما از سقرطه بخانیم ممکنه که علی اغزان رو چی بخونیم منصوب بخونیم اتفرال محل کنیم مثل همین موردیه که الان داریم ولی تو اسم فایل که بهش خواهیم رسید چون سالک اسم فایله اضافه شده به مفعولش میشه مفغول منصوبش راحت فعل محلش گرد تو بحث بعد از این خواهیم بسیم مشیل حلوک این مشیل حلوک مستریه که به جای فعلش نشسته یعنی یمشی مشیل حلوک یه نفری رو داره محت میکنه میگه بر روی جاهایی که دشمن خیزه خیلی راحت این حرکت میکنه راهایی که هیچ کس چش نمیتونه رو هم بذاره مشیل حلوک میگه این میره میگیم چجوری میره میگه یمشی مشیل حلوک اون مشیل حلوک مستر مفهول و جای فیلش نشسته. راه میرود مانند راه رفتن حلوک حلوک سیغه مبالغه است برا حالک یعنی حلاک شده منظور زن فاجر است مانند رفتن یک زن فاجره که راه میره علیها الخی علو علیه ها خبر مقدر الخیلو مبتدای معخر حال است از برای الحلوک حال از برای مضافن الله جایزه بیاد مثل علیه مرجوک جمیانگی که از اون سه سوبره علیه ها در حالی که بر او یک پیراهن است خیل یک پیراهن نازک. کن علیه ها الخیلو الفوزولو شاهد سر الفوزولوست که این الفوزول صفت است از برای الهلوک معش مستر اضافه شده به سوی کی؟ به سوی الهلوک الهلوک لفظاً مجرور محلنجیه مرفوع الفوزولو که صفت اوست چه خود جون اومده تابه؟ محلش اومده شده الفوزولو تابه؟ محلش اومده الفوزولو فوزول زنی رو میگن که لباس نازوک میگه مثل یک چنین کسی که هیچ باکی ندارد که به هر شکلی که میخواد راه بره بیخیال در بین مردم میره اصلا قصد پوشش نداره او هم همینطور بیخیال در وادیهایی که دشمن خیزه راه میره از چیزی ترسیم نداره مشیل که علی خی علول فضولو شاهد سر حل فضولوست که صفت است از برای حلوک و تابه بردش این یک مثل گفتن مشیه یعنی چی یمشی مشیه الحلوک و قوله هی یکم قوله این شاعر قد کن تو داین تو به ها حسانن مخافتل افلاس و لیانه حسان اگر از حس گرفته شده باشه علف و نون زایده داره و عدمیت میشه چی چی؟ غیر منظرم اگر از حسین گرفته شده باشه علف و زایده نداره فقط عدمیته میشه منظرم لذا هر دو جایزه قد کن تو داین تو داین تو یعنی قرض میدادم. میگه من بودم که قرض میدادم به ها به اون درهم و دینار ها حسانن میگه من به درهم و دینار های خودم قرض میدادم به کی بگیر به حسان چرا؟ مخافت الافلاس و لیانا نه که شده و لیا نه اشباه شده چرا به فقط به حسان پولاتو قرض میدادی میگه به خاطر اینکه میترسیدم دیگران بیان بگن چی نداریم افلاس افلس الرجل یعنی افقره مفلس شد یعنی فقیر شد بیان میگن آقا نداریم المفلس فی یوان اللہ یا لیان لیان یعنی سر درموندن داره امروز بریم سراغش میگه فردا بیا فردا میری پس فردا بیا. اینو میگن چی لیان میگه می ترسیدم اگر به دیگران بدم چی بشه ها یا من رو سر به دوانن یا به مفلسی بیفتن لذا به دادم چون یقین داشتم حتما رو به هم برمید قد کنتو تا اسمش داینتو فعل و فائل به ها متعلقه به داینتو حسانا مفغولش این جمله خبر کنتو خبر کانه اگه فعل ماضی باشه بهتره با قد بیاد مخاق قطر افلاس مخاق مستر میمیست این خود مستر گفتیم چیکار میکنه عمل بگو در اسم مصدر می میس مخافت الافلاس یعنی خوفی الافلاس دیگه مخافه مفعول له است برای دائن تو مفعول له اینجا فائلش حذف شده یعنی مخافتی چون باید فائل مفعول له و فائل عاملش چیه یکی باشه وقتی اونجا داین تو اینجا باید بشه چی؟ مخافتی الافلاسه مخافه اضافه شده به الافلاس یعنی ترسیدن من افلاس دیگران را که بهشون قرض بدن ولیان ولیان عطف شده به جای الافلاس و به نصف خونده شده به چه اعتبار بگید؟ به اعتبار اینکه که عطف شده به جای ها الافلاس عطفه به جای محلش شده عطفه به لفظش نشد ولیان تتم یجوز و فی تابه جایز است در تابه مفهول المجرور یه مستر مجهول هم ما داریم تو عربی مثلا تو اون آیه و بعد قلبهم سیغلبون این و بعد قلبهم سیغلبون میگه بعد انقلبون این انقلبون که تقدیر میگیره منظورش اینه که قلب اضافه شده به چی؟ نایب فاعلش چون تعبیر که میبره میگه ان قله بود سیبه یعنی مصدر مجهول هم داریم همونطور که مستر معلوم داریم مستر مجهول از اون نایب میگه حالا تو اون مثال بالاییه دتونه من گفتم عجب تو من ضرب زیدن گفتم زید احتمال داره چیه فاعل باشه احتمال داره نائب فایل باشه و احتمال داره مفعول باشه لفظش هم که مجروره پس الان ظریف رو تو مثال بالایی میشه چهجور خوند مجرور بخونیم تابه لفظش بشه منصوب بخونیم اگر زید مفعوله مرفوع بخونیم اگر زید نایفایل یا فایل باشه حالا نگاه کنیم یجوز فی تابه مفعول در تابع مفعول حالا آره من تابع مفعول یه مثال بزنم مثل عجبت من منعکل خبزه عجبت من منعکل خبزه و لحبه یعنی تعجب کردم از خوردن چی؟ نون و گوشت حالا اگر این اکل اضافه شده باشه به مفعولش معلوم باشه اضافه شده باشه مفعولش اون بلخبز رو میتونم چجور بخونم اون بلخبز مجروره بل لحم رو میتونم چجور بخونم منصوب بخونم اگر مجهول باشه و اضافه شده باشه به نایف فایلش اون موقع میتونم غیر از این چی بخونم مرفوع بخونم روز مجرورم که عطف علال لفظش میشه الان در این مثال عجبت و من اكل الخبزه و لحم و لحم چند تا مثال ترید چند شک میشه خون عطف علال لفظ بشه مجرور عطف عل محل نسبی بشه و عطف علل محل غفی بشه به شرط این که فعل ما مجبور فرض بشه مصدرمون تحویل به فعل مجهور بره بشه ان او کلر یجوز و فیتابل مفعول المجروره ازا حوز ف انگامی که فایلش هست شده مثل اینجا که فایلش چیه اصلاح احتمال فایلیت دیگه داده بگید نمیشه من ما زکر با آنچه که ذکر کردیم با آنچه که ذکر کردیم چی بود یعنی این که میتونیم نصب بدیم اطفال المحل میتونیم جر بدیم اطفال لفظ یعنی در همین مثال عجب تو بین اکل خبزه وله میتونیم اطفال لفظ کنیم مجرور میتونیم محل کنیم مفعول میگه یه جوری دیگه هم هست مصدر مجهول فرض کنیم. ارفع و یجوز و فاعلش ارفع ورد. جایز است رفع الا تقدیر المصدر به حرف المصدری گن موصول به فعل لم یسمى فاعلوا. بنابراین که فرض کنیم مصدر رو تعویل ببریم مصدر رو به حرف مصدری ها تعویل به حرف مصدری بره انما گفت انکان فعل و معن او ما یحل محل له تغییر به فعل بره با حرف مستری اما فعلش چی باشه موصول به فعل لم یسم ما فاعل موصول باشه به فعلی که لم یسم ما فاعلوا فعل لم یسم ما یعنی چی فعل مجهول یعنی بگم تقدیر عبارت این بوده عجب تو من ان اوکل و ون میگه این هم چیه؟ جایزه خب بریم سر مطلب بعدیمون فازا باب و اعمال اسم فائله این باب اعمال اسم فائل است که اسم فائل چجوری عمل بکنی اول مستر رو گفت بعد چی رو میگه اسم فایل رو میگه بعد اسم مفعول رو میگه مستر رو جلو انداخت چون مستر از نظر پایه جلوتر است از بقیه مشترگان کفه الهی اسم و فائلن عمله انکان انموزیهی به معزل و ولی استفهامن او حرف ندا او نفین او جا اسفه او مصنده درست شو؟ اسم فائل با چه شرایطی عمل میکنه؟ اسم فائل اگر بخواد نصب بده عمل رفعیش نه. اگر بخواد نصب بده اسم فائل و عمل فعل متعدی رو بکنه باید دو تا شرط داشته باشه یک به معنای حالا استقبال باشه دو تکیه کند به یکی از اون چیزهایی که تکیه می‌کرد یعنی مثلا مبتدا ذوالحال موصوف یا قبلش استفهام بیاد یا قبلش نبیاد بیاد ولی اگر چی علف لام داشته باشه این شرایط لازم نیست اسم فاعل دو جوره یا الف دارد یا نداره اگه الف داشته باشه یه عمل مطلقا عمل میکنه به طور مطلق اگه الف نداشته باشه چی باید دو تا شرط داشته باشه به معنای حال استقبال باشه و تکیه کنه چون اگه الف داشته باشه الف لامش الف موسوله بعد از موسول معمولا جمله میاد اینجا شبه جمله است و جای جمله فعلیه نشسته شه خیلی قدیم میشه دیگه نیاز نداره ولی اگر الف نداشته باشه به خیلی قدیم میشه ولی اگر نه الفلام نداشته باشه باید به منا حال استقبال باشه و خودشم شبیه به فعل مزاره از جهت وزن عروضی لذا با همدیگه یه حالت توافقی بینا کنم و میتونه عمل کنم اسم و فائلن مبتدا که فعلهی قبر محدم اسم و فائلن که اسم فائل ماننده بگیر فعلش میباشد فعل عمله در چه چیز ماننده فعلشه؟ فعل عمل در مطلق عمل در مطلق عمل کردن مثل اونه یعنی اگه فعلش بگید لازم اونم فایل برد متعدی به یه مفهول اونم هم دو مفهول سه مفهول مثل این اسم و فاعل فعل عمل که فعلهی این فعل عمل متعلق است با آن که؟ که بهش متعلقه یعنی اسم و موجود که فعلهی فعل عمل امکان ان انموزیهی به معزلن ان این شرطیه کانه چیه؟ فعل ناقص. فعل ناقص زمیره اسم فائل اسمش به معزلن با به منای فیه یعنی فی معزلن مشخص خبر کانه است. متعلق به عامل مقدر خبر کانه ان انموزیهی متعلق به مع میگه انکان انموزیهی اگر از مازی بودن خودش چیه در جایگاه ازل باشه یعنی از مازی بودن خودش چیه کنده شده باشه به معزلن یعنی فی معزلن متعلق به عامل واقع در خبر کنه این یکی از شرطهای اسم پایل یکی از شرطاش چی شد اینکه از مازی خودش چی شده باشه کنده شده شرط دوم و ولیه واو میگه ها این ولیه عط شده به جای کانه فعل زمیر اسم فاعل فایلش استفهامن مفعولش و شرط دوم و ولیه استفهامن ولیه گفتیم یعنی چی؟ ولیه یلیر چجور داشت میه؟ و بعد, بعد. یعنی وقع بعد, بعد استفهامن و شرط بعدیش اینه که واقع بشه بعد از استفهام او حرف نداه. یا حرف ندا حرف ندا عطف شده به جای استفخان و ممدود به خاطر ضرورت تبدیل به مقصور شده ندا بوده او نفین باز عطف است به جای استفخان بعد از نف او به اینجا با او عطف میکنه او جاعه جاع عطف میشه به جای وگیه جاعه اسم فائل صفتن صفتن یعنی مشتقن و بیاید اسم فائل سفت یعنی سفت واقع بشه یا خال اگر اسم فائل سفت فیاد دکیه میکنه بکی به موضوع اگر خال یا دکیه میکنه بکی به زورها او جا اسم فائل سفت یعنی خالن او نه خال یا نه او مصندن مصندن اتفاست به جای سفت یعنی بیاید یا بعد از نفی باشه نحن. نحن. یا بیاید در حالی که صفت است من حال هست یعنی بیاید در حالی که صفت هست. یعنی اینکه به موضوع به زرخان. یا بیاید در حالی که است.